سفرهای جوانی، سرزمین دو خرشید، نوشته امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی هنرمندان به ترتیب اجرای نقش، مهدی تحماصبی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیان، حرموز سیرتی، فریدون مهرابی، عیوب آقاخانی، اسماعیل بختیاری، آشا مهرابی، علی میلانی، علی اسقل دریایی، توران مهرزاد، امیر زنده دلان، مندانه اسلانی، سینانی کوکار، محمد رضا علی، محمد حسین مجدزاده، احمد آغالو، رازیه مومیوند، مینو جببارزادی کارگردان شاله اولو افکتور فرشاد آزرمیان صدا بردار: پیروز صدرایی تهیه کننده: محتاب امینی برو دیگر اینجا دیشه این گفت ملک سعید برو بیرون برو دیگر چرا دوستان چرا <تصفيق> میشه سفر به من و تو میگوید دوستان چه دوستی مزک برو برو دیگر نباید بپرسم چرا نمی کنم باور نمی کنم که شما باشی باور نمی سفر چرا باور کن چند شب از که به های شام و بساطت را نپرداختی برو دیگر بیچاره صبر کنید اماد، سفر در را باز کنید باز کنید که چه هر از پشت در بگو میشنویم ما به فقیر مسکین بیچاره ام تهام و شراب ما نمی بخشید برو برو مانای ما نشو. بیش از این هم سماجت کنید جذبه و اساس را خبر می کنید. ولی اماد من که همیشه شادی و نشاط شما رو میخواستم به خاطر شما حتی زمین و ارث پدریم را فروختم و خرج شادی شما کردم <تحاری> اما آن روزها گذشته خودت میدانی که اینک دیگر آه در بساط نداری داری تو همه چیزت را بر سر قمار گذاشتی و باختی بیچاره با حالا هم که بینوایی در این مهمان سرا فقط کسانی می میتوانند رفت آمد دوران که جیب های پر داشته با. من همه چیزم را به خاطر شما باختم بهانه نیاور مرد اگر بلایی بر تو نازل شده باشد به خاطر خوش‌رکسی های خودت بوده نه میتوانستی پول هایت را اندوخته کنی یا به تجارت و یا هر غلط دیگری مشغول باشی اینقدر سر به سر او نگذار ایمان بگذار شرش را کم کند بره بیا یا برویم به کار ما در را باز کنید باز کنید برویم اما یادت باشد که ما اینجا فقط به حرفهمان ایمان مشکل اینا مرتا ای بی ها. این دست مزده من بود این دیگر روی بازگشت به نزد برادرانم را هم ندارم همه یه داراییم را یک روز باختم نابود کردم بشتیانت ملک ها؟ این وقت شب اینجا چه میکنی بسرم چه شده که فریاد سر دادی سیاز میبینی با من چه کردن میبینی اینان میگفتند که دوستان من هستند حتما دیگر از تو دست کشیدند و رهایت کردند این طور نیست من چون این روزی را پیش بینی می کردم بسرم. نابودم کردن فیاض نابودم کردن تو سرمایه عمر و جوانیت را حرامین بی چشم روها کرد <تصفيق> یک هی کاش هیچ وقت قدم به اینجا نمی گذاشتی تو که خودت هم در خدمت اینهایی فیاض آه نه اینطور نیست پسرم تو که همه چیز را نمیدانی دانی ملک زید می نه نمیدانم نمیخواهم که بدانم سعید من سالها با پدرت دوست بودم او مرد هوشیار و خوشنام و ثروتمندی بود هیچ وقت از کمک به این آن دریغ نداشت من هر وقت که تو را اینجا میدیدم دلم آتش میگرفت. سعید پسرم هنوز هم دیر نشده تو جوانی میتوانی جبران کنی نفعی آز. من دیگر روی بازگشت به خانه را ندارم پس میخوایی چه کنی؟ هیچ هیچ؟ یعنی چه؟ نمیفهمم از این شهر میروم فیاز میروی؟ به کجا؟ به جایی که کسی مرا نشناسد این خوب است هجرت دید مرد را باز میکند شاید زندگی تو را تغییر بدهد آه من چیزایی را که خریدم باید برایشان ببرم وگرنه این دو شیاد پلید و پست راحتم نمی گذارد. باید بروم برو فیاس برو هر که را دیدی بگو ملک سعید برای همیشه از این دیار رفت این وقت شد داغل به خانه برو برادرانت را خبر کن نه آنها دیگر احتیاجی به برادری چون من ندارند. Dolphins, no, oh, my javone, biciole. طاقت تواند ندارم اقلت رو ای برادر کنار برو محمد بگذار در را باز کنم برادر منم بگذارم تا سدمی ندیدی کنار برو محمد فسود فسیته بدرمون رو فراموش کردی نه فراموش نکردم اما دیگر پس است چه میخواهی بکنه هیچ فقط میخواهم این در را باز کنم تا تو ببینی که پشت این در هیچ خبری نیست برادر پدر می گفت فرگز به که کنار حیات است نزدیک نشویم و آن را نگشاییم او در آن لحظات فقط هزیان می گفت محمد حزیان؟ آری از کجا که گنجی پشت این در پنهان نکرده باشه اگر چون بود که آن را از سفرزندش دریغ نمی کرد. پس چرا در لحظات آخر ما را من کرد که به این در نزدیک شویم نمیدانم. میدانی محمد شاید تو آن زمانها را به یاد نگاورید ولی من و سعید بارها پدر را دیده بودیم که خود این در را باز میکرد و به تنهایی داخل میشد مدتی را همانجا سپری میکرد اما کسی جرأت سوال و پرسش نداشت حتی مادرمان که خدا رحمتش کند اگر خوش این در بلای منتظر من باشد چه؟ بلا؟ مهری بلا، نحسی نکفت نه نه من از این چیزها نمیترسم میدانم که نمیترسی پس حقیقت را بگو میخوای چه کنیم؟ من سخت به پول نیاز دارم محمد اگر این کار را نکنم باید سهم خودم از این خانه را بفروشم پس بگو بعد از زمین و مزرعه نوبت سهم خانه شد اصلا بگو بدانم تو چرا معنی میشوی، محمد یا راست و پوست حرفت را بزن یا کنار برو و بگذار به کارم برسم مشکل مسعود تو از این کار دست بردار آن وقت آن وقت ام. آن وقت چه؟ من سهم تو از خانه را میخورم تا بتوانی مشکلت رو حل کنی چه خب؟ چه میگویی؟ چرا ساکتی برادر؟ زرنگی برادر زرنگی سهم سعید را هم تو خریده بودی درست است؟ آره خب او هم مثل تو گرفتار بود و به پول می که او رفت و دیگر برنگشت. کسی هم از سر نوشته او خبری ندارد تمامش کن محمد حسلم رو سر بردی خب این سکه سهم مرا از خانه بده که کارهای بسیار دارم برادر تو در کارهای ناسواب غرق شدی. باید همت کنی و دست از این کارها برداری دیگر شادخاری نکن مسئولد نمیتوانم محمد نمیتوانم چگونه نکنم ها چه هرچه تو بخوای؟ هست دیگر با تو حرفی ندارم همه سرنوشت برادر من ملک سعید را فراموش ندارم کار سعید ربطی به من ندارد حال می روی سکه ها را بیاوری یا این گر را بشکنم بسیار خبرم بگیر می روان <laughs> سال محصول گندم خوبی به باب منشینت امسال خیلی هرزمت بود اگر خدا بخواهد باید نتیجه خوبی داشته باشه کیست؟ منم فیاض ملک محمد در را باز کن فیاض؟ آری چه شده؟ نکنم دیگر مرا نمی جنازی. تو اینجا چه میکنی فیاض؟ در را باز کن تا بگویم فیاض؟ بدان که اگر آمده ای از من زر و سیمی برای ملک وسود بگیری بهتر است به او هم بگویی که من دیگر چیزی ندارم به او بدهم وقتی این حرفا نیست محمد دیگر دیر شده پسرم در را باز کن زود باز آه. چه گفتی؟ مگر چه شده؟ او تمام دار و ندارش را یا باخت یا با اطرافیانش به خاری نشست خداونده ایاز. چرا دو برادر من به چون راههایی راه هایی افتادند؟ نمیدانم پدرت چه کرده بود که فرزندانش به این سرنوشت و چار شدند نمیخواهی داخل شوم؟ چرا داخل محمد باور کن من همیشه دلم میخواست به برادرانت کمک کنم بارها و بارها م. اما آنها هرگز نخواستند که به حرفهای من گوش بدهند همکنون برادرم مسعود کجاست؟ او هم مثل برادر بزرگتر ملک سعید نتوانست با حقیقت رو شود رو و ترک شهر و دیار کرد. حال چه کاری از من ساخته از فیاض؟ نمیدانم پسرم نمیدانم آنها به رایی رفتند که خود انتخاب کردهاند. ب... بیا فیاز بیا بیا روی این تخت بشیم ممنونم ممنون آیاز چرا تو مجبوری آنجا بمانی و به سفر و کمک کنی؟ به خاطر دخترم دخترم مسیر دست آنهاست دخترت؟ آه. نمی تو فرزندی هم داری آیا غیر از این دختر فرزند دیگری هم داری؟ نه فقط همین یک دختر است از بد حادثه به سفر بدهکار شدم و او دخترم را خاصگاری کرد من نادانم برای اینکه که از شروع رفتاری بدهی خلاص شوم قبول کردم همه هم او قولش زد به عذیت و آزار دخترم پرداخت رحالات و مجبوری سالهای پیریت را برای او کار کنی تا بدهیت را بپرتزی محمد این دور سفر و اماد از اجده ها خطرناکترند مبادا به آنها نزدیک شدیم من که با آنها کاری ندارم مطمئن باش پدرم به هر سه نفر ما سهمی از این ملک و خانه و مزرائه و مقداری هم نقدی نبخشید اما آن دو ابله مسعود و سعید همه سهمشان را از میان بردند اما من با کار و کوشش زیاد ثروت اندکم را اضافه کردم تو خوشقلتر و کوشاتر از برادران دیگرت هستیم پس به هرچی که میخوایی میرسی بذارم من مطمئن هست. ممنونم فیاض من دیگر باید بروم خدا خداحافظ خدا دوست بزرگوار. تو دیوانه ای ملک محمد <متار> من مطمئنم که گنجی پشت آن در بخشت وجود سعید اگر یادتان باشد که در بارها ما را از باز کردن آن در بر داشته حتما رمز بلای خانمان سوزی است. محمد کمی فکر کن عبلا. چه دلیلی دارد که پدر بلای خانمان سوزی را پشت در بسته و در خونه نگه دارد با محمد را رها کن سید بهتر است ما به فکر خودمان باشی. شما دوما میکنید در اندر میدانید نمیدانید بیرومان به درب شما چیزی گفته که این گونه اصرار میکنید از خنده هایتان پیداست آه ما هیچ چیز نمیدن این برادر بیا منک مسرده سیگر اینجا جای ماندن من مسرده برادر سید مسرد خدایا. خدایم باوست موزگی کجای اگر پدر به آنها چیزی گفته باشد چه اگر اگر اگر آنها چیزی دانسته باشند و من بیخبر منده باشم چه یعنی برادرانم به من نارو زدند شاید این در را قبل از من باز کرده باشند اما نه شیطلالت نباید این گونه فکر کنم. نه نه نباید آنها برادران من هستند این هم اینجا هم اینجا در من چه می کند <تصفيق> که تعجب کردی از دیدن من خوشت نیامد من بهتر از بگوی اینجا چه می <تصفيق> من شنیدم که خربوزه های تو شیرین ترین سیفی ها در این نواهی است گیرم که آری؟ که چه تو چه میخواهی؟ من آمادم که با تو قرار اومداری بگذارم با اجازه تو یکی از این خربوزه ها را امتحان میکنم بردار چه قرار اومداری؟ <تصفيق> ما برای پذیرایی از مهمانانمان، خصوصا آنها که گاهی شب را پیش ما به صبح میرسانند به سیشتی های تو محتاجیم خوب است یک چیز را بدانی اماد من همه محصولم را قبلا یک جا فروختم اما تا جایی که می دانم غیر از من کسان دیگری هم در این اطراف مزرعه سیفی دارم و تا جایی که می دانم های خوبی هم به بار می یعنی با این حرف ها می خواهی دست رد به سینه من من قبلن همه محصولم را فروختم دروغ می به چه کسی فروختی؟ قریبه از او را نمی شنستی امروز و فردا هم می آید که همه را بار کند و با خود ببرد حالا کارت به جایی رسیده که مرا دست میاندازی مرا با شما کاری نیست اماد راحت را بگیر و بازگرد عاقل باش آخر باش پسر در افتادن با ما برایت سودی ندارد از جان من چه میخواهید برادرانم را خانه خراب کردید بس نبود؟ ما ما انها را خانه خراب کردید دیگر کافی است اماد هر چقدر میخواهی بردارو برو اما دیگر به مزرعهی من پا نگذار نه تو بر از سفر ما هیچوقت با همکاری نداشته این بعد از این هم نخواهیم داشت. ببین من آمده بودم که تو را از اشتباه بیرون بیاورم. برم میخواستم بگویم نه اماد چیزی نگو نمیخواه چیزی بشنم گفتم که هر چقدر خربازه میخواهی بردارو ولی برو ولی اماد من میدانم که تو با سفر برای من هم نقشه و خیال ناجور دست هم میپرورانید تو اشتباه میکنی؟ ما میخواهیم آنچه که با برادرانت بد کردیم جبران کنیم اگر قدم از قدم برداری یا با خوشزبانی بخواهی مرا فریب دهی با این داست م... تیز تو را به درک حاصل می‌کنم حرف آخر همین است همین است این را به سفر هم بگو بسیار خوب باشد فقط یادت باشد که خودت خواست تو هم یادت باشد اگر بعد از این به من نزدیک بشوید هرچه دیدید از چشم خودتان دیدید ملک محمد بدان به زودی پشیمان میشوی؟ دیوان ها چندان هایشان را هر روز بیش از پیش برای من تیز میکنند. خدایا دیگر دست و دلم به کار نمی رود هر روز زودتر از روز پیش و خسته تر از پیش دست از کار می کشم. حزاحمت اینها از یک سو. فکران در هم و سوی دیگر مرا سخت پریشان کرده خدای من چه باید بکنم از دست من چه کاری ساخته بیشتر بشف بیشتر... این کار را نکن ملک محمد بازدم. تو قول دادی پدرم من آمد تو نباید آن قوف را باز کنی پسرم نباید خدایا حالم دیوان میشوم چه حالی پیدا کردم شاید هم با دیدن تو به این حال افتاده باشم بدر پسرم پشت آن در جز در به و آوارگی هیچ چیزی نیست بس دست بردار من باور نمی کنم یا. بز آن را باز کردی من آنچه شرط عقل بود با تو گفتم ملک محمد دیگر خوددانی خوددانی خوددانی الاخره رفت دیگر بترست آخر شب <تصفح> <تصفح> <تصفح> همه جای این اتاق را گرد خاک گرفته مثل که سال از متروک بند پر از تا رنگ بود اما اما در این اتاق که چیزی نیست روی انتاقچه یک صندوقتو میبینم بیدنم بازش کنه. <تصفح> <تصفح> <تصفح> شد دودست ویدو قلیزی از صندوق شو بیروزد نکند این دود هم میباشد و مرا حلاک کند یک تصویر تصویر یک دختر زیبا آی خدایا چقدر این دختر زیباست به عمرم زنی به این زیبایی ای ندیده بودم ها. این کاغذ چیزی که پشت تصویر بود یک نامه بهتر احترام رو باز کنم ای کسی که این نامه را میخوانی یقین بدان که دیری نخواهد گذشت که از باز کردن این صندوقچه سخت پشیمان خواهی شد با خبر باش که تو اولین نفر نیستی که تصویر مرا میبینی و آخرین هم نخواهی بود چهرهی که در این تصویر میبینی نقش دختر پادشاه سرزمین دو خورشید است و کسانی که سال برای یافتنش خود را آوار و سرگردان کوه و بیابان کردند بیشمارند آنها جز پشیمانی یا مرگ دلخراش در غربت چیزی نصیبشان نشده اگر عاقلی تصویر و نامه را در صندوق بگذار و در آن را ببند به زندگیت برگرد و همه چیز را فراموش کرد در غیر این صورت زیر تصویر چند تار مو وجود دارد سه تار مو را از آنین بردار و به سمت سرزمینی حرکت کن که دو در درن میتابد بدان که آن ستاره مو سه بار به تو کمک خواهد کرد خدای بزرگ خرچه گونه میتوانم از صاحب این تصویر زیبا چشم بپوشم نه من در صندوق چرا میبندم و نه به زندگی که آور پیشینم باز میگردم من به سرزمین دو خورشید میروم. یا صاحب این چهره را پیدا میکنم یا هلاک میشدم هاری چوز این نمی کنم. تو هم مثل دو برادرت میخوایی زندگیت را به نابودی بکشی نه نه باورم نمیشود آخر تو چطور یک به این تصمیم رسیدی بزرم باور کن فیاس من راهی سفری طولانیم سفری دیروازگشت یا بیوازگشت بزرم به فیاس پیر بگو که چه شده میبینی که همه چیز را برای سفری دراز آمده کردم فیاس آخر تو همه چیز را برای خوشبختی و سادت در کنارت داشتی اکنون میخوایی همه را رها کنی و به سفری نامعلوم و مجهور بروی پس دیگه چرا آرام. مرا به اینجا خاندی؟ تو را به اینجا خاندم که در نبود من مراقب خانه و کاشان هم باشی این هم مقداری سکه که تا مدتی میتوانی اینجا با دخترت زندگی کنی تمام غروزت را هم به اماد و سفر پرداختم فیاز چه میگویی محمد؟ تو مرا نجات دادی از تو ممنونم فسرم باشد باشد از خانه تو مراقبت میکنم من را را فروختم و فقط همین خانه برایم مند فیاز خیالت آزوده باشد مانند چشمانم از آن مراقبت میکنم اگر آمدنی شدم به این خانه میگم و اگر نیامدم نه،, نه این حرف رو نزن اگر این گونه نشد طبق دست خطی که به تو دادم خانه از آن شماست خب من دیگر باید بروم خداحافظ فگاست خیلی پیش <تصفح> به سلامت جوان من امیدوارم که به سلامت برگردی و در خانه خودت منزل کنی خب ایوان از این به بعد من و تو دوست و همسفریم. حیوان راه هی خدایا این جوان را کمک حال باش و را نمایش کن چه زود از نفس افتادی؟ چه می شود کرد خدایا من هر بار که به تصویر این دختر نگاه می کنم امیدم به پیروزی بیشتر می شود به تصنان و بردارم راهی شد بدون عصبم می توان رفت نباید وقت را بیش از این طرف کرد من حتما موفق خواه شود. <متصفيق> من یاد های من که بیدم ماهی تلویی از ها بیرون کرید به کبوتری سفید با تو, تو, تو, تو دوغ سبز به دوره کردن تبدیل شد و پرزدن آه... این ماهی سیاه چه فرنده بزرگی شد و و میره و تو دنبال او میرهد ها امیدوارم نتبالتو که شکار کن بابرم شود. من, من نکنم از تشنگی مشاعرم را از دست دادم پرری خیال است وهم هم است بهتر است به این چیزها فکر نکنم خورشید کم کم فرو میاد کو یا چیزی به به آفتاب نمانده گر سر از سب تاکن هیچ نخوردم شاید لوغ اینان از زنبان حالم را بهتر کند پری همین جا راه می در ساحل رودخانه آتشی روشن می کنم و استراحت می کنم هرچه باشد، هر ارداغ همروز خود هست تو چه میگویی اماد؟ تو حرف میزنی سفر دیگر بخواب من خستم تمام کارهای این مهمان سره امروز بردوش من بود من مطمئنم که فیاض پیر نمیتواند مقاومت زیادی در مقابل ما از خود نشان بگیر او را از دست دادیم سفر دیگر فکرش را هم نکن آخ که همه ایسیر سر این ملک محمد بود اگر دستم به اون میرسید میدانستم با او چه کنم میخواهی چه کنی؟ می توانیم خانه ملکشانی را تصاحب کنیم چطور؟ فیاض پیر را تهدید می کنیم می ترسانیمش هر کاری که بتوانیم گوش کن اماد من به سر خوابم را از این پله ها بالا کشیدم و به بام آوردم تا از دست پر هر پیای تو آسوده شوم آن وقت تو باز هم دست از سرم بر نمی داری و وسوسه هم می گوش کن اماد این صدایی که بود؟ نمیدانم امشب که ما مصافر از راه اینجا نداریم که شب راه به صبح برسانم چرا دارید ما؟ با با با با بازم شبه <تصیق> آری من من شاهی <تص> تو تو که مدت هاست که اما هنوز هم کار بسیاری از من برمی مخصوصا در مقابل آدم های تمایی چون شما ما که با تو خوالی نداریم پس دست دست ما این شما بودید که پسران مرا گمراه کردید نه <تصحیح> نه نه نه نه ما بادرشان نکردید این این درخواه خودشان بود نه نه نه ما چرا؟ شما را تشویق کردید و حال هم های دیگری در سر ما ما کلاه حق با است. از ما دست بکش. او بس بدانید که من قدرت این را دارم تا در یک لحظه این مکان را که محل کارهای ناسواب و ناروای شماست ام چون لانه پرنده‌ای بر سر شما خراب کردم اشوایت قولی بدهید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 چه شب اول ناکی بگو ببگو بب ماما چه چه چه, چه میخوایی بکنی من نشانی بر چهره شما میگذارم <تصفيق> که هر وقت به خود نگاه کردید به یاد این شب و این خال بیفتید این چه گوره نشانیست در کجای صورت ما خواهد بود <تصفيق> علامت یا خط کوچکی بر چهره هر کدامت شما میگذارم تا هر یک آینه ای باشید برای دیگری و هشدار می دهم که هرگز به فیاز و دخترش و خانه پسران سفر کرده من نزدیک نشد و میدید؟ نشنیدید که چه گفتن؟ مطمئن باشید به خدا که دیگر نه به آنها و نه خانهشان کاری نداریم حتی فکرشان را هم حال می بهتر شد بسیار از همکنون علامت و خط کوچکی بر چهره هر یک از شماست اما بدانید من هر لحظه در کمینم تا انتقام نابودی و آوارگی پسرانم را از شما بگیرم این را فراموش نکن با با هرگز آن خانه نزدیک نشوید هرگز... دیدی سفر؟ این شبه لعنتی؟ به نشان دادن قدرتش علامت کوچکی بر چهره ما به جا گذار لعنتی آخه که اگر دستم به سرانش میرسی کلافی میکرده بهتر از فراموش کنی امان اگر این بار برگردد ممکن است که سر را را بپاسی آره حق با توست دیدی که چه قدرتی دارد داشت اینجا را زیر و رو میکرد ببینم من که باور نمی کنم که هنوز زنده ای بی بی بی بی بی که زنده ای زنده ای را برایم نسکر جان ملوم که به مقصد برسیم بروردیو را به تو بنام کمک کن کن چه باید کرد راستیم تارهای ما چرا تا کنون به فکر آنها نبودم آری آری باید یکی از آنها را آتش بزنم تا ببینم حرف حدیث آن نامه چقدر درسته این نامه رو در جیب بکرم این بسم این سدایی کی بود اربال من اینجایم جایم پشت سرتان نگاه کنید؟ خدای چه میبینم؟ تو دو, دو, دو, دو, دو با اینکه که به هاد همیزاد میمانی اما... اما چرا به جای دو چشم سه چشم در سر داری؟ آره اربا هم این جور هست که و, و... و ش... شکل پنجه با مچه آن موهای بسیار بلند هم بود شما چرا از تا ات جب و پریشان شده هر فرواب همه اینا را نیز خود میدانم. بفرمایید چه امری با من دارید چه گفتی؟ گفتم بفرمایید چه امری با من داشتید می میخوام میخوام که ارباب می خواهم به سرزمین دو خورشید بروم اما ارباب من نمی توانم شما را به آنجا ببرم چرا مگر تو قرار نیست در مشکلات یاری کنی چرا ارباب اما ورود من یعنی کافور به آنجا ممنوع است بسیار خوب کافو لعقل بگو از کدام راه میتوان به آنجا رسید سرورم راه بسیار است. اما اگر شما مسمم هستید و میخواهید به آنجا برسید باید خوب برفای من گوش کنید گوش میکنم بگو چه باید بکنم شما باید هر روز در مسیری قدم بگذارید که خورشید به شانه راستتان بتابد و سایه شما در سمت چپ باشد اما این همه دقت و تحکید برای چیست؟ چون کوچکترین اشتباه شما را سالها از مقصد و مسیر اصلی دور میکند. به همین کار را میکنم سر برم. من دیگر فرصتی ندارم باید شما را ترک کنم <تصفيق> <تصفيق> بسیارا این که منا به گفته های کافور میدانم از کدام مسیر و چگونه باید شوم ؟ گفت در طول راه همیشه باید نور خورشید برشانه راستم و سایه در سمت چپم باشد خایدرستو خوشید هست حرکت کنم <تصفيق> Oh, خداوند ها <تصفح> دیاری کن که مار شبار سیاه اومدی با بزرگ است سنگ مقابل پای من چه کنم این سنگ رو بر سرش و کوبم و کارش رو بسازم فقط نمیده نمیده هم دشارد اگر نمیده نمیده از ناگه هم رو جهد من رو نیش بزند حلاک کنم آه... ای خود بین شد ای ممنونم تو جان مرا نجات دادی مار سفید چگونه حرف مفت خدا چشمان آبیه تو چقدر مزهور کننده است؟ تو جان مرا از دست این دیده برای همیشه خلاص کردی یعنی من من, من م... مگر د... بله. تو... آن مار سیاه را که کشتم بله آن مار دیو سیاه و پلیدی بود که مدتها مرا تغییب میکرد ولی تو باز و برای دومین بار باعث شدی که من از دست این دیو پلید رهایی یابم دومین بار؟ یعنی بار اول که بود؟ هنگامی که تازه سفرت را آغاز کرده بودی کناران رودخانه آن ماهی تلائی را که نجات دادی من بودم خودمان. همان که ماهی سیاه بزرگی تقییبش میکرد آری ها. اگر تو راهش را رو نبسته بودی در همان روزخانه مرا رو اسیر میکرد چرا میخواست تو را اسیر کنه؟ کمی صبر کن تا بفهمی چون چ... چ... چ... دور خود این کار برای چیست؟ میبینی؟ خداوند حال من هم شبیه آدمیان شدم باور نمی کنم. تو تا چگونه به دختری اینچنین؟ زیبا بدل گشتی نجاب <تصفح> هیچ آن را باور نمی کند من چرا باید باور کنم برای این که من دختر شاه پریان هستم آه بس تو آری <خر> باور میکنم آری باور میکنم و پس آن دیو آن دیو بعد پیبت زمانی خواستگار من بود نمی فهمم. یعنی تو از مرگ خواستگارت خوشحال خوشنود شدی عجال نکن جبان مسئلت این که اول همه قضاوت حرف های می کنم بشنوی خوب است بدانی که ما پریان نمیتوانیم و اجازه نداریم که با دیوها ها ازدباش کنیم اینطور؟ و به همین خاطر آن دیف کینه مرا به دل گرفت و در صدد انتقام بود او میخواست مرا برای همیشه اسیر و زندانی خود کنیم و اینک از مزاحمت آن دیف خلاص شد آری بسیار خسته به نظر میرسی جوان اگر بپرسم تنها در این بیابان قصد رفتم آه. به کجا را داری نمک بر زخم من نپاشید پریزاد شوری به دلم افتاده که هستی و وجودم را برباد باد داده بهتر است کنار این سخه بنشینی و استراحت کنی علی باید استراحت کنم من میدونم که چند ماهی سرحال حال از این بیابان هستی چرا جوان به کدام بلد به دنبال کسی هستم که هم کرده با آتش سوزم بر جانم زده با همه وجودم را مشتری ساخته. <تصفح> <تصفح> به پریشانی من میخندی؟ تمسخورم میکنی؟ نه نه من ببخش. قصدان تمسخور نبود. بس چه به چه میخندی؟ گویا تو هم یکی از اشاغ دختری در ترزمین دو خوشید. درست نگویم؟ آره من نمیدانم به او خواهم رسید نه. ای این آوارگی این یا موانه بره خدایا همه یه توانم را از دست و دن دیگر امیدی ندارم تو کمک بزرگی به من کردی جوان من از پدرم میخواهم تا به تو کمک کنم پس دیگر ناامید نباش پس شما یاریم میکنی؟ البته نمیتوانم باور کنم خدایا شکرت شکرت اما <تصفح> جوان حتما میدانی که دختر پادشاه سرزمین دو خورشید برای ازدواج از شرط و شروطی دارد که باید به با آنها عمل باشد میپذیرم هر چه که باشد و پیش از همه نباید بدانی که تمام کسانی که خود را به سرزمین دو خورشید رساندند هنگام انجام شروط ازدواج از بین رفته و نابود شدن خریزان اگر میخواهی از به مرا عوض کنی بدان که از راه آمده باز نمیگردم یا میروم و میمیرم یا سربلند بیرون میآیم؟ پس مصمم هستی که تا آخر راه را بروی حالی فریزاد و جز این نمی کنم مطمئن باش بسیار خوب حال که شنین هست همراه من به قصر ما بیام بیا تا تو را نزده پدرم ببرم؟ آنجا هم استراحت میکنی و هم با خانواده ی من آشنا میشه دعوت مرا قبول میکنی حالی دعوت تو را با جان و دل میپذیرم همون ملک محمد است همون که مرا نجات داده آه بیاید عزیزان بیایید و کنار من بنشین بیا دخترم بنشین جبان من میرم پدر سفاس بزارم. آهای بیایید مسافران ما خسته و گرسند مشغول شدید عزیزان من میدانم که سخت و نید پس نوشه کنید ملک محمد چرا چیزی نمیخوری؟ به چه خیره مانده راست میگوید جوان چرا ساکت و سامت به خدمتکاران خیره شدی؟ من, من... من... من... بهتر از تعارف را کنار بگذار، جوان. میدانم که چند روز از غذای درستی نخورده نکند مشکل دیگری داری؟ آره سوام مشکل بزرگتری دارم که باید را حل کنم <تصفيق> مشکل تو را میدانم خوب میدانم مطمئن باش. من هم مثل دخترم سعی میکنم که از هیچ کمکی به تو دریق نکنم پس در حال غذایت را سیر بخور و شب را خوب استراحت کنم آره مریک محمد با راهی که تو در پیش شاید دیگر مدت ها برایت فرصت استراحت پیش نگهید من هم می استراحت کنم پس تا صبح فردا شب خیر شبت هم به خیر سر برم. مطمئنم فردا پدرم گفتنی های زیادی با تو خواهد داشت که تو را آماده تر می امیدوارم امیدوارم همینطور باشد ما هرگز به کسی دروغ نمیگوییم ملک محمد مم. مطمئن باش هرگز به خصوص مم. در این هنگام که تو نباید اطمینان از ات دست. شما را ندیدم ببخشید شاهزاده خانم و پدرشان منتظر شما هستم از من خواستم که شما رو باخبر کنم ممنونم بانو هم به دیدارشان می با اجازه سربرم درود بر سربرم روزتان بخیر شاهزاده خانم روزت بخیر باشد ملک محمد ها درود بر تو جوان امیدوارم که دیشب را خوب خوابیده باشید آرهی سر برم و خوب خوب است بیا بیا بمشین دوسته از این سر اتاعت میکنم <تصفيق> با این خواب حال باید برای ادامه سفرت کاملا آماده باشی. آرهی همینطور است طور از کاملا آمادم بسیار خوب از تا چاشت و تعام برای من آماده شود من هم تو را در انتظار نمیگذارم و گفتنی هایم را آغاز می کنم. سر و پا گوشم سفرم. بفرمایید. جوان مرد، بدون چیزهایی که برای تو تعریف می کنم، تو را مختار می کند. شاید بخواهی که از همینجا جا برگردی و یا به سفرت ادامه بدهی. ام. دخترم همه سرگذشته تو را که در راه سفر برایش گفته ای برای من بازگو کرد. بس لازم است که خوب و با حواس جمع به حرفهای من گوش کنید من سرافا گوش هم سبرم. قبل از هر چیز باید بگویم که به خاطر کاری که تو برای نجات دخترم کرده ای تو را سروت بسیار میدهم تا به طبانی بان زندگیت را بسازی و از این سفر صرف نظر کنیم. مطمئن باش که این ثروت بیشتر از ثروتی خواهد بود که به پدرت ملک شاهین در همین جا بخشیدن سبرم. شما پدرم را از کجا می‌شناسید؟ سعادت خانم شما نیست تا اون چیزی به من نگفته بودید. من میخواستم این چیزها را از زبان پدرم بشنوید تا اطمینان تو بیشتر پدرت ملک شاهین هم در راه سفر به همین جا رسید و ما به خاطر کمکی که او به مشاور من کرده بود، یعنی در واقع او را از دست دیو سیاهی که تو دیروز را کشتی نجات داده بود، نهایت کمک را به او کردیم. او به دیارخیش بازگردد پدر از مرد شجاعی بود اما وقتی فهمید که هیچگاه نمیتواند از پس انجام خواسته های شاهزاده خانم سرزمین دخورشی برای از از ادامه سفر منصرف شد منصرف شد؟ آره اما با دلی شکسته و فکری آشون نه ممکن نیست باورش برای ماسا نیست در اون سفر مشاورم به داد او رسید و داروی التیام بخش به او داد وگر نه وگر نه و... وگر نه چه سفرم وگر نه او در همان بیابان که تو از آن گذشتی تلف شده بود پدر من هم آری جوان پدر تو و صدها مرد دیگر هم تا کنون راهیان یعنی این سفر بودند با این همه من راهم ادامه خواهم داد سفرم از این سفر هر هم که پر خطر باشد، اجتناب نخواهم کرد. هرکس کمی صبر کن ملک محمد کجاست؟ راحتش بگذار دخترم. او به تنهایی و تفکر احتیاج دارد. وقتی خوردن تام دوباره با او حرف میزنم تا آن وقت فرصت دارد که فکر کند. تو نگران نباش. هرچی شما بخواهید آه، آمدی محمد منتظرت بودم سبه من از رفتار امروزم نادم و پشیمانم یگر داریم باره چیزی نگو جوان مرد ولی آخر سرورم محمد من... گوش کن جوان ما حرفای مهمتری داریم که باید با هم بزنیم مرا ببخشید سرورم رفتار من مثل کودکی شاید بدتر از آن بود شما باید مرا ببخشید باشد برای اینکه خیال تو آسوده شود میپذیرم و تو را میبخشم خوشحال و سپاس گذارم حادشاه بزرگوان بسیار خوب جوان من به تو قول دادم به خاطر جوانمردی که از خود نشان دادی به تو کمک کنم. پس حالا خود به حرفهایم گوش کن. سر و پا گوشم سفرم بفرمایید. پادشاه سرزمین دو خورشید برادر بزرگتر من است. این تو. مقر پادشاهیش جاییست جایی است که روز صبح به واقع دو خورشید در آن تول می کند. این عجیب و شگفت‌انگیز هست سفرم. در آن سرزمین، اول خورشیدی که طبق معمول از شرق رو می کند و در غرب غروب و دوم خود خورشید شاه که آه. برادر بزرگتر من است پس به همین دلیل آن سرزمین را دو خورشید نامیدند خاری، در واقع او پادشاه بزرگ ما پریان است که هر یک از ما در چهار نقطه جهان به خدمت او مشغولیم اه. حکمرانی برادرم با ادالت و نیکی شروع می شود و همواره در طول شبانه روز با ادالت و نیکی ادامه پیدا می کنید گفتی در چهار نقطه جهان؟ و آن سه حکران دیگر؟ هره، آن ستای دیگر آن ستای دیگر سه برادر کوچکتر من هستند آه. که در سه نقطه دیگر جهان حکومت می کنند پس سرزمین خرشیدشا کجاست؟ <تصفيق> جاییست که احاطه کامل بر حکومت هر چهار نفر ما را دارد او پادشاه اعظم هفت زمین آسمان است اما سرفرم چطور ممکن است او جایی سلطنت کند که حکومت هر سه نفر شما زیر نظرش باشد م مگر, این که... مگر این که در آسمان باشد <تصفيق> درست است جای او در قلعه بسیار بلند است که بر همه جا احاطه دارد و فقط این می توان بر همه چیز مسلط شد از سرزمین پریان تا نیکی های روشن و پلشتی های تاریک <تصفح> منک محمد تو جوان زیرک و باهوشی هستی امیدوارم که در این سفر موفق و پیروز باشیم امیدوارم سفر. و من به پاس جبران خدمتی که به دخترم کردی تو را تا نزدیکی مقر پادشاهی خورشیدشاه خواهم فرستاد سپاسگزارم سرفرم اما فقط تا نزدیکی آنجا چون اجازه ندارم کسی را به آن سرزمین وارد کنم از آنجا غلامی به نام آبنوس تو را همراهی خواهد کرد و تا زمانی که او را مرخص نکنی همانجا منتظر بازگشت تو میماند و میتواند همه جا تو را ببرد به شرط آنکه مکانی ممنوعه نباشد سپاس گذارم سرورم و این لطف و بزرگواریتان را هرگز فراموش نمی بسیار خوبه حالا بیا و اینجا بنشین میتواند من این چیزها را از قبل برایت آماده کردم این سبوی آب و این سفری غذا را هم راحت ببر که در راه بسیار به آن نیاز خواهی داشت. آبنوس، آبنوس بیا در خدمتم سرورم اح. از این به بعد تا زمانی که ملک محمد تو را به قصر باز نگردانده به فرمان اوی که هرچه امر کند انجام دهیم به روی چشم اطاعت می کنم سرورم بسیار خوب ملک محمد از همکتون میتوانی راهی شوی. از مهربانی و لطف و مهمان نوازی شما سپاس ملک محمد من از جانب خودم و دخترم با تو خداحافظی میکنم تو را به خدا میزبارم خدا نگهده شما آبنوس؟ بله ارباب من در خدمت گذاری حاضرم چه میخوایی؟ میخواهم مرا به سرزمین دو خرشید ببری اما ارباب رفتن من با آنجا ممنوع است عبنوز تا آخرین جایی که می توانی او را ببر و منتظر بازگشتش بمان چون این خواهم کرد سر برم مه. پس چشمهایتان را ببندید و آماده باشید من آماده به زودی احساس سبکباری می و فضای شما را احاطه خواهد هر چه می خواهی بکن عبنوز و مرا زودتر به مقصدم برسند بشتی بود که نصیب من شد آه. آه. تو زخمی شدی جوان آره اما مهم نیست بانو کاش می توانستم کاری برای تو بکنم اما می بینی که من هم مثل تو دست بسته و عصیرم همگی ما برده به حساب نیاییم کاری از دست کسی بندی ما ساخته نیست چه میکنی؟ نزن بیه نزن مگر چی میکنی؟ مگر نمیدانی که ارزدن بردگان با یک دیگر ممنوع است. راحت بگذار مگر چه کرده؟ آه. زبان درازی نکن، اب؟ نه. نزم مما او گناهی ندارد بخیز. برخیز روی راه بیافت برده ما زبان درازی؟ او را میبریدش، چه میخواییم بکنی؟ نزم به عقب کشتی میبرم راه بعد هم به بازاری پر رومنق برای می بینی چه دست و پایم بسته از چگونه حرکت کنم من بازش میکنم کنم راه بیافت راه بیافت دونتر مفکر جای تو اینجاست تو باید همینجا بمان ساعتی بیش همینجا برده این مرده به آب انداختیم تو باید جای او را بگیریم منشین اینجا و پارو بزن سود باش بشین باید دوباره در سپایتون را ببر پارو را بردار و پارو بزن سوت باش سود باش ببینم اسم تو سعید هست آری خداوند چه میبینم این توی سعید برادر نه. برادر مصبوط تو در کشتی بردگان چه میکنی بر نگرد مگرنه جا به شلاغش خواهد بودید خداونده شکرت که ما رو دهم رساندی این, این خواست خداوند است که برای ما چنین تقدیری باشد بس اود برادرم بگو بگو تو چگونه سیر این برد فروشان شدی. داستان مفصلی دارم و دا اول از خودت بگو سید بعد از اینکه ثروت هم را به پای دو کفتار ریختم دستم این بود که به هندوستان یا زنگ بار سپر کنم در راه کشتی ما دچار طوفان شد همه ی غرق شدند شدن اما الوارش کسته ای درمی آن دریا برای از مرگ حتمی نجات داد حال که داری زبان درازم میکنی لعنتی نکنه سرت به تند زیادی کردن نزان حالا قطر را میرم از زبان بیافتی چوس به دادن به چیز دیگری فکر نکن درمیش کنیم ما او چشم اینجا سرزمین دو خورشید است ارباب من بر فراز این کوه های فراغ و بلند؟ بله ارباب ولی من اجازه ندارم که شما را تا بالای کوه برسانم حتما در بالای کوه قلعه ای پر از سرباز و نگهبان در انتظار من است اگر چنین باشد که امکان ندارد من به بخصودم برسم آقوز باید تار مویی آتش بزنم امیدوارم نترسید نه نمی ترسم عرباب آسود خاطر باشید من اجازه ندارم از مکانی که ایستاده‌ام قدمی جلوتر بیایم و یا با قول چشم کافو سخن بگویم. بسم الله. امرتان را بفرمایید. کافور در خدمت شما. کافور میخواهم راه ورود به سرزمین دو خوشید را به من نشون دهی. میدانم که آن بالاست. اما تو بگو راهی غیر از بالا رفتن از این کوه پرخطر وجود دارد یا نه؟ راه دیگری میگایید سربران؟ آره راهی میخواهم که بتوانم از میان نگهبانان به سادگی و بی‌درد سر بگذرم. آیا راهی هست؟ بله سربران. راه دیگری وجود دارد. راهی که من میشناسم پس بگو، زودتر بگو. بگو چه راهی؟ رایس که بسیاری از اهالی سرزمین دو هم از آن میخبرد دیگر بهتر از این نمیشود کافور سربرم آن سنگ بزرگ سفید را میبینید کدام؟ اینجا که پر از سنگ سفید است بله اما سنگ سفیدی که تصویر دو روی آن حق شده باشد فقط یکیست اگر کمی جلوتر بروید میبینید بله درست است نقش دو روی این سنگ حک شده ارباب از زیر این سنگ کشمه اینی که اگر خلاف جهت آن بروید به تای چای خواهید رسید که منشه اصلی چشمه است آنجا است که درست در وسط آن میدان سرزبین دو قرار دارد وقتی به آنجا رسیدید باید صبر کنید تا هوا کاملا تاریک شود و مردم به خواب برود. چرا باید تا شب صبر کنم کافور؟ سربران، این و در تاریکی از دید اهالی و نگهبانها در امانید. آه، خب، بعد بعد باید از جا خارج شوید و خود را در وسط سرزوین دخورید خواهید یا ولی ناپرید شد های تو هنوز اینجایی؟ بله سرورم گفته بودم که اجازه صحبت در حضور کافور قول سه چشم را ندارم حال من چه باید بکنم آبنوز؟ دوباره مقابل آن سنگ سفید بروید و سعی خود را بکنیم خم... گویا جز این همچاره دیگری نیست همونی سنگ هست تو باید به من کمک کنی متاسفم ارباب. من اجازه ندارم قدم از قدم بردارم و همینطور اجازه ندارم به شما کمک کنم خم... من با تمام قدرت باید این سنگ رو جابجا کنم آیا تلاش کرد مفایده است با توان یک نفر امکان ندارد که این سنگ ذره از جایش کنار برامد باید یه این... این تصویر ها... تصویر بهتر از که پر از دست های روی یکی از این تصویر ها بگذارم... شاید اینگونه... شاید اینگونه اتفاقی افتاد... <تصفح> کهدیاجیبه okay. زور بازو نداشت سنگ بسیار راحت از جایش لغزید و کنار رفت خدای بزرگ چه میبینم اینجا مس چاهی چه, چه دهانی بزرگی دارد آب پلکانی همآنجاست که رو به پایی میرود صدای قلقل آب را میشنوم اما هنوز آن را نمیرم راه را پیدا کردم آبروز پیدایش کردم خوشحالم <تصفيق> ارباب که خودتان به تنهایی راه را پیدا کردی مرهم از تو ممنونم تو بودی که برای تا به اینجا آوردی حال چه میکنید به زودی حرکت کنم بسیار خوب پس من همینجا منتظر بازگشت شما یا خبری از جانب شما میمانم مانعی ای نمیبینم اما معلوم نیست سفر من بازگشتی داشته باشد پس تو تا سه روز اینجا منتظر بمان. اگر باز نگشتم یا خبری به تو ندادم پیش شاه پریان و دخترش بازگرد و ماجرا را برای آنها بازگو کن اطاعت میکنم کنم امات اینجا باید بازار برد فروشان باشه سفر، اینجا شهر است که ما با آن آمده با اقبا توست بر حال سفر خوبی بود، هم فال و هم تماشا هم خستگی سالها کار را اصلا گرفتیم هم با یک کار تجارتی مختصر سه برابر آنچه که گوان کردیم سود بردیم میخواهی اکنون که سود خوبی برده ایم کنیزی یا برده ای ما برده و غلام میخواهیم چه کنیم؟ به گمانم تو امروز از دنده چپ بیدار شد پس دیدنشان که سرری ندارد رفیق. باشد اما باید قول بدهی که بعد از آن فوراً به شهر و بیار خود تو تا بیش حد نگرانیم ما مهمانسرای ما نباید بیش از این بسته بماند سفر وگرنه به زودی همه مشتریان ما را فراموش میکنن آنجا آنجا را نگاه کن سفر چه شده؟ ملک سعید و ملک مسعود وای به سران بزرگ ملک شاهی نه میبینی سفر عجب روزگار بیره میست آنها را به غلامی و فردگی آورده اماد میگویم به نظر تو وقت انتقام نیست ما از چه داری حرف میزنی سفر؟ یادت نیست که شبه ملک شاین چه بلایی بر سر محمد. ما آمد ما میتوانیم آن دو را بخریم و با خود ببریم ماری برادر کوچک همین ها ملک محمد بود که فیاض پیر پادوی ما را از چنگ ما در آورد و بعد از او دیگر هم کسی برای ما کار نکرد با این حال ما این دو جوان درمانده را میخریم و مثل استر از هر دو کار میکشی آره، فکر است؟ آن وقت هم غلام و خدمه دارین هم به این شکل انتقام ما گرفته خواهد شد پس <تصفيق> بیا اما بیا اینجا نیست. باید هرچه زودتر مامله این دورا با فروشنده تمام کنیم و به خانه و کاشانه برگردیم بیا اگر از شبای من چاین هم خبری شد ما را آزاد میکنیم و کار تمام است باشه، باشه تو جلوتر برو من هم پشت سرت میآیم وای که چه کیفی دارد وقتی آن دو ببینم که من و تو خریدارشان هستیم و تا آخر اوم هم باید فقط به خاطر یک دک نار برای ما کار کنند و زهج بگیشم راستش من خیلی مشتاقم بدانم که این دو چطور به این سرنوشت دچار شدند پس عجله ما عجله کن تا برد ها را نخروخته ما آنها را بخریم البته باید چند سکه خرجشان برویم برویم ببینیم چه می شود؟ که پیدا هستین دو تن آبروی برای ما نخواهند گذاشت. من مثل تو یا یابگویی های این دو مصفره ابله را ندارم پس بگو میخوایی چه کنی؟ باید سعی کنم کناب را از دست رایم را از کنم این کار خطرناک از مسعود آخرین زندگی سارت با به چه درد ما میخورد سعید؟ من تلاش می‌کنم جنام را باز کنم. می می‌خواهد بشود. شاید حق با تو رخش اما چیزی در دلم نهیب میزند که این کار ما هم مثل دیگر کارهایمان اشتباهه. یعنی باید این خار یا خفت را تا آخر عمر تحمل کنیم. نمی‌دونم. هر هرچه خدا بخواه سعید. تنها به دور دستای من شل شد من... برادر این دو خبیست به زنده و من و تو هم رحم نمی بهتر از آرام بگیری من نمی نه نمی دست دستایم باز شد بگذار دستای تو رو هم باز کنم در آرامتر که متوجه بشه بند آه. آه. آه. خوب است دستانم را راه را کن صدای اونجا چه خبر است؟ صدای زرف نقلی من بود که از بار یکی از افتادان افتاد گنبال من بیا سفر به نظرم آنها دستایشون را باز کردن من اونهای فراری یکم هم من چه؟ شما هنوز آدم نشدید خالیتان می کنم اونجا می خواستید فرار شما حق ندارید با ما اینگونه رفتار کنید تمام مردم این شهر و دیار ما سه برادر و پدرمان را به خوبی میشناسند ما هم فقط به خاطر همین بود که شما را خریدیم شما از غیرت و انسانیت هیچ بوی نبارده یهانت را ببند بگرنه خودم آه. برای همیشان را ببند ببین چه کسانی از انسانیت حرف میزن آه. آه. آه. شما با خار و ذلیل کردن ما شاد میشدید بله شاد و خرسند آه. آه. نمیدانید ملک محمد برادر دیگرتان چطور ما را خار و حلیل کرد ملک محمد. زود باشید این پاری نمیشن زود باشید هر دو از مرکب پیاده شد بهتر از ما بقیه راه را پیاده کنید؟ تا آردن شما از مرک محمد خبر دارید اوخ. آری، آری یک بار تصمیم گرفت که به یک سفر طولانی مدت برود و بعد از آن دیگر کسی از اون خبری نداره. چه اینطور گفتم پیاده شوید آه. زود باشید این گونه قصابت اقوبت بدی دارد چه میکنید؟ آیا. میخواهم شما را به آخریش دار ببندم چرا ما را اینطور نگاه میکنید؟ من از برادرم جدا نمیشوم راست میگوید ما این خاری و خفت و بردگی را فقط با هم تحمل میکنیم آن هم فقط وقتی که با هم باشیم ولی به یک دی سفر شرط چه <تصفح> شرط شرط شرطی بگذار حرف بزند اما شما دو نفر باید به ما قولی بده. <تصفح> شره نیستم بر گول ما اختیاری دارند یا قول و قراری از هر بابش ببینیم که <تصفيق> چه میخواهد اما آ... آری آری حال بگو بدانیم چه گولی بگو بگو باید قول بدهید که هیچ وقت ما را از هم جدا نکنید البته اگر شما هم قول بدهید که زربزی و آرام برای ما کار کنید باشد قبول است فیلن که ما نه سرپناهی داریم و نه کاری و پولی از ما مجبوریم که شما را تحمل کنیم و شما هم ما بهتر شد خوب نه... نه... اکنون بگویید بدانم شما چطور به این سرنوشت دچار شدید و چه شد که برده شدید من بعد از بیرون آمدن از شهر به دیدار دوستی قدیمی و پرنفوز رفتم دیدم که او حاکم شهر شده اما از بد حادثه دشمن با آنها وارد کارزاری سخت شد و من هم بعد از کشته شدن دوستم به اسارت درآمدم بعد هم فروخته شدن حال مجبورم که قیافی شما دو نفر را تحمل مم. کنم باز هم دوست دارید قصه ما را بشنوید یا نه اوه چه جوشیه زود خب بیایید بیایید دستهایتان را به پشت آخرین شطور میبندم و هر دو کنار هم خوب است؟ اعتراضی که نداریم نه نه هیچ اعتراضی نداریم امیدوارم که گفتهای شما راست باشد وسنوز هم حرفای ما را باور نکردیم ایگر چه بردیمی کنم شما برده و خلام مایید و باید برای ما کار کنیم اما بیا ما و باید راه بیافتیم شمیدن داستان این دو برادر باشد برای بعد است دیگران بارهایشان را زودتر از ما به محصد برسانند حق با توست برگیم چه روزگاری شده یه چیزی گفتی سعید؟ عجیب است من بالاخره نفهمیدم اینها چطور سر راه ما قرار گرفتند راستش من هم به همین فکر نکردم آنها که هیچ وقت شهر را ترک نمی‌کردند و دست از کارشان نمیکشیدند چطور از اینجا سر درآوردند شاید شاید این هم کار خدا بوده تو خیال نمی‌کنی این کیفر گناهان گذشته ماست نمی شاید هم به قول تو به این علت باشه اگر اینطور باشد پس وای وای به حال این دو خبیس ببینم مسئود تو که دیگر خیال فرار نداری و مرا تنها نمیگذاری ها نه نه اگر تو بخواهی نه <تصفح> خوب است <تصفح> خیلی خوب است در این صورت ما با امید و به پشتوانهٔ یکدیگر زنده میمانیم و زندگی میکنیم فقط امیدوارم که بعد از این سختی ها زندگی بهتری در انتظارمان باشه. من هم امیدوارم ملک مسعود تو بعد از مدتها با این حرفها مرا خوشنود و خوشحال کردی از تو سپاس گذارم منم خوشحالم خوشحالم که را در کنار خود دارم ملک سعید واقعا خوشحالم منم فیاض ملک شاهین ملک شاهین این تو اسی باور نمی‌کنم از من چه میخواهی؟ پسران من مسعود و سعید در رنج و بردگی هستند فیاض آنها اسیر و برده اماد و سفر دو موجود پلید پست و تمام شده آری یاری میدانم دوست من میدانم این ماجرا برای منم غم بزرگیست کاش اجازه داشتم کاری برای آنها بکنم گمان میکنم شما توانان را داشته باشید که آن دو تمه کار لنتی را تنبیه کنید من یک بار این کار را کردم فیا و آنها را تا سرحد حد مرگ ترساندم اما میخواهم که سعید و مسعود خود تو به کار و پشیمان بشوند تا شاید خودشان برای این اسارت و تحقیر راه حلی پیدا کنند پس میخواهی تعین سرنوشتشان را به خودشان واگذار کنی آه. همانطور که ملک محمد پسر کوچکم راه و روش زندگیش را خود انتخاب کرد خوشحالم که شما از همه چیز باخبرید من سعی بسیار کردم تا با پند و اندرز آنها را از گمراهی نجات بدهم اماباری میدانم دیگر چیزی نگو همه چیز را میدانم از تو میخواهم آنها را تنها نگذاریم و از این دیدار من هم چیزی به آنها نگویی. باشد باشد هرچه شما بخوایید ملک شاهین مطمئن باشید خواسته شما را انجام میدم سپاس دوست من من دیگر باید بروم قیاس از تو میخواهم به قولی که دادی وفادار باشی اگر شما هم این را از من نمیخواستید این وظیفه من بود ملک شاهی از تو سپاس گذارم اکنون میتوانم کمی آرام بگیرم فیاز های شما را هرگز فراموش نکرد و نمی کند. خدا حافظ تو باشد واقعا نجیب است این مرد بعد از مرگش هم نگران سرنوشت فرزندان خود است نمیدانم وقتی پا به سرزمین داخل رید بگذارم یک جزر روشتی انتظار برا میکشم حالا باید خود رو یکباره و با یک جهش بالا بکشم برکا بله خیلی بیرون آمدم خدای من اگرون از کدام سو باید سرزمین دوخوشید خوش آمدی جوان ما ش... شما که هستید خیلی وقت است که منتظر تو هستیم در انتظار من بودی؟ بله کمی هم دیر کردی فکر کردیم شاید از ادامه سفر منصرف شدی نه نه نه حال از من چه میخواهید؟ ترسیدهی ملک محمد نه نگران نباش اینجا کسی به تو آسیبی نمیرساند ولی ولی چطور؟ شما حتما در مورد من خیالاتی در سر دارید، نه؟ از آن روزی که تو آن تصویر را دیدی، تحت نظر است. تحت نظر؟ بله، کاملاً. اanhum تحت نظر شاهزاده خانم و پدرشان خورشیدشاه، کیان چور. واکنوم ساعتی است که آنها منتظر تو هستند، جوان مرد. بهتر است که ترس را کنار بگذاری و همراه ما شوی، بیا جوان پس سرزمیند و است با وجود تاریکی شب شهر زیر نور پرتلالوه الماز ها و جواهرات که غصت ها و خانه ها را از آن ساخته هم می درخشد. از این صوبیا ها جوان مرد داری حال وقت تماشا نیست جوان راه بیا از این به بعد تو باید این راه را تنها بروی این راه به کجا می رود؟ این راه مخصوص ورود به غصه خرشید شاه هست تو اکنون می توانی تنها به تالار و حضورشام شرط گذاشته. از شما سپاسگزارم. جلوتر بیا، مریک محمد. درود بر شما بزرگوار تعظیم <تصفيق> <تصفيق> دازم، نیست. جلوتر بیا. به شکل شما گلگار خمون برداره کوچکی است ما. بخطی بیشتر چیزی پیش آمد جوان مرد آم. انگار زیر لب چیزی گفت خیر سربرم، خیر فقط خیره شکوه و جلال شما بودم که اینطور جلوتر. جلوتر بیا دوست من بیا سربارم. سربارم. قبل از هر چیز به تو خوش آمد می بویم. و بعد آرزو میکنم هم که تا حال در این سفر موفق بودی. بعد از این نیز سربرم باشه. از لطف و صمییت شما سپاسگذار و خوشمودم س. همانطور که میدانید دخترم برای ازدواج خواسته یا به عبارتی مانعی بزرگ در سر راه دارد بله با بزرگوار و من از میراسخ دارم تا این موانع را به هر شکل ممکن از سر راه بردارم خوب است خوب است. چون دخترم با آن کسی که بتواند آن مانع را از سر راه بردارد ازدواج می کند از سر برم. می توانم مانه چی؟ صبور باش جوان، صبور باش. مانه، پادشاه سرزمین تاریکیست پادشاه سرزمین تاریکی؟ آری او دیو سیاهی است که تو قبلا یکی از پسرانش را کشته ای. من؟ آری تو؟ پسر او همان کسی بود که به دنبال دختر برادرم بود تا او را اسیر کند؟ آ حض درست این پادشاه سرزمین تاریکی کجاست راه را به من نشان دهید تا همکنون راهی شویم کمی حوصله کن جوان قبل از آن سخنانی دارم که باید بشنوی فرما بخشید سفرم بفرمایید سر پا گوشم سرزمین آن دیو سرزمین تاریکی و ظلمت مطلق است و در قعر زمین جای دارد در قعر زمین آری ای بزرگوار راه دسترسی به پادشاه ظلمت چیست اجده های دو سری همیشه روبروی ورودی قصرش از آن محافظت می کند. پس راه ورود به قصر از میان بردن آن ژده هاست کاملا درست است و حتما راه از میان بردن آن اجده هم مرگ؟ وست. نه نه نه نه این بار سخرت درست نیست. پس با آن ژده چه باید کرد؟ آن اجده ها دو سر دارد آه. اما نباید سر او را قطع کنی. راه از بین بردن آن اژدها ها کور کردن کامل آنست می جوان کور کردن کامل اجدهار. آری بزرگوار مطمئن باشید به درستی عمل خواهم کرد من او را کور را نابینا می کنم این تمام آن چیزی بود که من می توانستم برای راهنمایی به تو بگویم بقیه یه دیگر با خود توست سپاسگزارم. گذارم سخنان شما کمک زیادی برای من بود حال بگو بدانم با این اطلاع اندک باز هم می خواهی به جنگ دشمن برابیم؟ آری بزرگوار میروم تا این کار را تمام کنم. پس سفارش می‌کنم که هوشیار باشی و مراقب حیله‌های دیب تاریکی باشی. اه. و اما یک نکته بسیار مهم دیگر، چنانکه می‌savaram، همین که از قصر خارج شدی، به هیچ کس و هیچ چیز جز خودت اطمینان نکن. مطمئن باشید، سرورم که همه سخنانتان را به خاطر سپرده و حال اگر اجازه بدهید، حرکت می‌کند. حرفی نیست؟ اما بهتر است چند لحظه سبر کنیم بیا جوان بگیر این چیز سرم این شمشیر را هیچگاه از خودت دور نکن خیلی به دردت خواهد خورد شمشیر؟ آری جوان این من مشکلی دست چپ خود را نیز به تو خواهند داد بگذار من را به در آورم یا جوان این انگشتری را به انگشت خود کن. سرورم سپاسگزارم. نمیدانم نیکی های شما را چگونه باید پاسخ بگویم. یادت باشد جوان انگشتری را از انگشت بیرون نکن. مگر زمانی که مطمئن باشی دیو تاریکی را نابود کرده. چنین میکنم سرورم. خب بس، بس، تا اینجا مشکلی نداشتیم. وقتی دیو را نابود کردی انگشتری را بیرون بیاور و دوبار روی آن دست بکش. بلافاصله در همین مکان که اکنون ایستاده این خواهی بود تکرار می در حفظ شمشیر و انگشتری کوشوا باش نهایت سعی و کوشش خود را به کار می گیرم این انگشتری غیر از برگرداندن تو به اینجا روشن روشنگرنده راهش که در پیش داری اما سردار من نگفتید که از کدام راه به سرزمین تاریکی خواهم رسید از تاریک ترین گذرگاه از راهی که کمترین سوی از نور در آن نباشد تو باید در تاریکی مطلق آنقدر جلو بروی تا با آن های نگهبان برسید. بسیار خوب. اگر رخصت دهید من همکنون با این انگشتری و شمشیری که به من بخشیدید راهی می‌شوم. باشد. برو ملک محمد. اما یک بار دیگر تأکید و پافشاری بکنم به محض خروج از قصر به هیچ کس جز خودت اطمینان مکن. چنین می‌کنم. بدرود سفرم. به امید دیدار جوان مرد. من و منتظر تو با که روزی بینی این حیوان از ما اسیرتر به نظر میرسد میمون بیچاره ببینین دو خوابزده زده اماد و سفر را چگونه باد میزند تا آنها خونک شدن از وقتی که این حیوان را به اینجا ورده هم کار ما سبکتر شده آری برادر وظیفه ما را این حیوان بهتر از ما انجام میده بسیار خوب وقت کار است برخیزو با من یا مسعود آنها خوابشو نمیختر برخیز چه میخواهی بکنی سعید نقشم را که به تو گفته بودم ولی من میترسم سعید اگر آنها بوی ببرند ما را زنده نمیگذارم نگران نباش برادر امیدت را از دست نده پس فقط بگو چه چه میخوایی بکنی و آسوده هم کنی. تو فقط با من بیا این بهترین فرصت است. باید به انبار خمهای کهنی شراب برویم به انبار های شراب؟ آری دیا مراقب پلکان باش خب. هستم تو برو اما سعید همی آرامتر آه باید کمی اجاله کنیم میترسم آنها بیدار شوند و کارمان نیمه کاره بماند پس زودتر من میترسم ملک سیده می نباش برادر دیگر چیزی نگو. کارها را به من بسپار من برای انتقام از این دو موجود پلید نقشه خوبی در سر دارم باشد. دیگر چیزی نمیگویم حسیدی. به گذار اول در این خمره بزرگ را برداریم تنها اینه میتوانیم میخوای کمکت کنم؟ آره بیا آرام بهتر شخت آه. از امروز آه. کار هر روز ما همین است برادر کار هر روز اما این کار خطرناک است. هر روز به گونه ای در این شراب ها دست بریم تا خاصیت آنها کم و زیاد با این کار اماد و سفر کم کم مشتریان پرافاقرس خود را از دست دهند. یک روز شراب را آتشین تر میکنیم تا مشتریان <تصفيق> پرتاقت را بیشتر <تصفيق> از همیشه از پا بیاندازد و, <تصفيق> و یک و... روز چنان بران آب میبندیم که بود و نبودش فرقی نکند <تصفيق> <تصفيق> این گونه ما انتقام سخت خود را می گیریم با این تدبیر محل حرزگی آنها ویران می شود. با این کار شاید از این زندگی نکبت بار خود را نجات دهیم حتی بسیاری از جوانان شهر را از حلاکت و نابودی نجات می بسیار خوب، عجل مسعود <تصفيق> <تصفيق> بعد از این کار باید فوراً و قبل از بیدار شدن آنها به دیدن فیاز برگیم. او پیغام داده که به دیدارش برویم. فایاز؟ فیاض کیست؟ فیاض دوست قدیمی پدر او همراه دخترش در خانه پدری ما زندگی میکنه آری آری, آری, آری. فیاض پاک فراموش کرده بودم <تصفيق> مرش سعید چطور خودش نیامده؟ چون دیگر نمیتواند قدم به اینجا بگذارم سعید من من از شادی این انتقام سر از پا نمی‌شناسم آه ساعتی است که منتظر شما دو برادر هستم چرا را دیل کاری پیش آمد که مجبور شدیم بعد از اتمام آن به دیدار تو بیاییم من مدت ها بود که اثر سرنوشت رنج بار شما با خبر شده بودم اما فرصتی پیش نمی آمد تا شما را بی سر و صدا خبر کنم و به اینجا بخانم همین که میبینیم تو از شهران دو ابلیس خلاصی پیدا کردی ما هم خوشحالیم حیاز باور کن مسعود راست میگوید حیاض ما خوشحال تر تویم چرا که به تازگی معنی اسارت و بردگی را فهمیدیم عزیزانم سپاسگزارم من هر چه دارم از پدرتان و کمک برادرتان است پس حق است که امروز دست شما را بگیرم به همین دلیل از دخترم خواستم تا در بازار به انتظار شما بماند و پیغام مرا به شما برساند او هم به خوبی این وظیفه را انجام داد. دارد آفیاز اگو از ما چه میخوایی؟ این خانه از آن شما و برادرتان است شما میتوانید هر طور میخواهید؟ از این منزل استفاده کنید شما صاحبان اصلی این خانه اید منظورت چیست؟ یعنی؟ من حاضرم را دوباره به صاحبان اصلیش برگردانم آفیاز تو پیرتر از هستی که طاقت آوارگی دوباره را داشته باشی ما نمیتوانیم اینجا بمانیم سفر و اماده ما را راحت نمیگذارند از اود راست میگوید و آنها به خیال خودشان پول خون ما را دادند تا جانمان را نگیرند راحتمان را نمیگذارند چه صدای؟ آرام بگیرید آرام بگیرید اززیزان من چیزی نیست. خطری شما راتهدید نمی کند. از کجا اینقدر مطمئنی فیاض دخترم را در کوچ گماردم تا مراقب اوضا باشد و اگر خطری ما را تهدید کند؟ به موقع خبرمان خواهد کرد ما تو را به زحمت انداختیم. این حرف را نگویید این وظیفه من است که در روز سختی به شما کمک کنم. فیاس بگو بر سر برادر من ملک محمد چه آمد؟ ملک محمد روزی این تصمیم به سفر گرفت و اینجا را ترک کرد آن اتاق گوشه ی حیات چه؟ آیا به آنجا هم وارد شد؟ آری آن را باز کرده بود اما از من خواست که با مرمت آن را به شکل اول برگردان من فقط همین را میدانم و تو تو چه کردی فیاض من هم خواسته های او را انجام دادم چه شده چه شده دوستان من چرا تعجب کردی آه. تو چه خیال می‌کنی سعید یعنی او آره او هم برخلاف وصیت پدر عمل کرد باید که سرندشته دیگری پیدا کرد شما را به خدا به من بگویید که از چرف میزنی پدرمان به ما وصیت کرده بود که آن در همیشه باید بسته بماند و هرگز به آن اتاق داخل که چه اینطور؟ اما محمد هوشیارتر از این حرفها بود. یعنی چه بلایی به سرش آمده؟ خیال بعد به راه نده مسعود. دل من روشن است که او باز میگردد خدا کند که اینطور باشد اما دوستان. من های گوی اندوختم را می توانم در اختیار شما قرار بدهم تا این دیار را ترک نفیاس ما باید در این شهر بمانیم و کفاری کفاره گناهانمان را پس بدهیم پس شما این گونه فکر می آری آری درسانی ما باید منتظر ملک محمد بمانیم چشم امید بسیاری به دیدار او داریم او از تو خواستان در را ببندی ما همون را نخواهیم گشود و با آن نزدیک نخواهیم شد. امیدوارم لاقل او با برگشتن خود گوشایشی در کار همگی ما ایجاد کند. ما هم امیدواریم فیاض در زم بهتر که بدانیم ما چندان هم بیکار ننشستیم. آه؟ یعنی خیالایی در سر دارید دوستان من؟ آری. اما فیاض باید به ما قول بدهی که هرگز این راز را نزد کسی بازگو نکنیم قول میدم، قول میدم، باور کنیم میدانیم، میدانیم، از تو مطمئن هستیم، فیاض فقط میخواستیم که یادآوری کنیم مطمئن باشید، هیچ کس را دشمنتر از من برای اماد و سفر پیدا نمی کنید. آرام بگیر، فیاض <تصفيق> همه چیز را به تو خواهیم گفت. آره. ما نقشه داریم؟ درست آمده باشم این بار باید موافق جریان آب حرکت کنم تا به زودی از اینجا بیرون برفم آمدید سربر من آری. آ... آ... چه میکنی؟ اگر رقلت را از دست دادی آب من هم ملک محمد آه. آه. آر به من حمله کردی بهتر از هم شمشیر من را نوشه جان کنی جنتی بگیر آه. آه. آه. تا دو به ما ریسیات شده آتش کرد دیگر چیزی از رو برچه های نماند. خب باور نمی کنم همین واقعا آیا این آبنوس همان غلام واقعی بود ولی چرا قصد جانه مرا کرده بود سلام ارباب خدای وضعی چه می بینم تو کجا بودی؟ من اینجا بودم با پشت سرتان چه کسی تو را اینگونه به تخت سنگ بسته؟ سربرم بعد از رفتن شما چند نفر به من حمله کردند و دست و پای مرا بستند آنها که بودند؟ چرا این کار را کردند؟ نمیدانم سربرم از پسشان بر نیامدم. فقط یکی از آنها خودش را به شکل من درآورد تا شما را از بین ببرد او کاملا همزاد من شده بود من که واقعا گیت شدم حال من از کجا بدانم تو واقعا همان آبروس واقعی هستی یا نه سرورم مگر قرار ما این نبود که تا زمانی که شما مرا مرخص نکردید در خدمتتان باشم مگر قبل از وارد شدنتان به دهلیز با من قراری نگذاشتید من چه قراری اینکه اگر تا سه روز دیگر برنگشتید من برگردم و جریان را به پادشاه پریان بگویم آره درست است. خیالم راحت شد. تو همون آب اوس خودمان. پس از همینک تو آزادی یا می توانی به قصد برگردی؟ برو. و شما چه می کنید سر من باید برای جنگ بادی و سیاهی و تاریکی به سرزمین تاریکی سفر کنم. اجازه بدهید همراه شما بیایم. چرا می خواهی این کار بکنی؟ شاید بتوانم کمکتان کنم. مگر نگفتی ادامه راه برای تو ممنوع شده. برای نبرد با پادشاه تاریکی خیر سربرم بسیار اگر مانعی نیست میتوانی بیایی استپاس بگو بدانم تو راه رسیدن به سرزمین تاریکی را میدانی؟ من فقط میدانم راهش از است که هرگز کمترین نوری به آن نتابیده آره آن راه نیز باید از زیر همین سنگی که علامت دو خورشید روی آن حک شده بگذرد وانجا در جهت عکس راه قبل که مرا نزد خرشید شاه پادشاه سرزمین پریان رساند. پس باید رو به پایین و به سمت چپ حرکت کنیم. ماریابن، بیگمان باید همینطور باشه. زودتر باید حرکت کنیم سربرمن. بسیار خوب. بس راه بیو اطاعت میکن. بی آبندس چرا ایستادی چرا نمیای اینجا بیش از اندازه تاریک از من هیچ چیز نمیبینم اما صدای جریان آبی بسیار اندک به گوش من میرسد بیا گوش کنید ارباب از اینجا صدای آب کاملا قطع شده تاریکی هم بیشتر شده ناری دیگرانقدر تاریک شده که نمیتوان قدم از قدم برداشت باید کمی تحمل کنیم برورده ها را کمکم کن هم انگشتری هاری انگشتری پادشاه گفت این انگشتری روشن کننده راهیست که می روی بگذار آن را امتحان کنیم باید یک بار روی نگین آن دست بکشم آ سرورم نگین انگشتری مثل خورشیدی کوچک می آری یابنوس نور این نگیم به خوبی راه جلوی پای ما را روشن <تصفيق> می کند. میشنوی یابنوس؟ این صدای ماری است. بهتر است خود را آماده کنیم یابنوس. آه آ... یابنوس؟ یابنوس تو کجا رفتی؟ یابنوس آنجا چه میکنی؟ وای بر من چه شده آبنوز؟ چرا از گردنت خون بیرون زده؟ به فکر من نباشید. آن دختر کوچک را که از دختران شاه پریان است نجات دهید. دختر شاه پریان کو کجاست؟ پس چرا من او را نمی‌بینم؟ کمک! کمک! نجاتم بدهید. کمک کنید. شنیدم, شنیدم. کمی جورت‌تر از اینجا سرورم آنجا ماری به دورش حلقه زده و او را اسیر کرده. شما دیدمش. من باید باید با را نابود کنم آن دختر را نجات. دارم. نه! برای نجات دختر باید شمشیرتان را بیاندازید تا مار او را رها کند. نجات بدهید، چخانبا. این عقیله را می‌خرم. چه میگویی ابلوس؟ من هرگز نباید این شمشیر را از خود دور کنم. خورشید این مسئله تأکید کرد. عوض باش که در عوض پدرم قاداش خوبی به تو بدهد. مالک محمد یادت بماند, بماند که به هیچ, هیچ کس, کس و هیچ چیز جز خودت اطمینان نکنیم اصمان چه باید بکنم باید تصمیم بگیرم؟ به هیچ کس و هیچ چیز جز خودم اطمینان نکنم حتی آبنوز ها؟ اول آبنوز چه شده سر چرا این گونه به من خیرت شده تو باید بمیری دروغ لعنتی حال نوبت شماست دخترک مار دیگری شده هر دو مار خدا را شوک كه شمشیرم را از دست ندادم حال میتوانم به راهم ادامه دهم خدا را شوکكه فریب نخوردم صدا از کجاست؟ باید از همین نزدیکی باشه باید از نور انگوشتری هم کمک بگیرم آنجا هستم دو چند هم مرد کدک که به بند کشیده شدند و چند مار هم دوره ایشان میچرخند ایچاره هاش قیافه های رکعتانگیزی یافتند تنست برم اون کمکشون کنم اما اگر باز هیلی در کار باشد چه؟ اگر این هم یک دام باشد چه کنم اصلا از راه خود را بگیرم و برامم ایمان بیا به بی من کمک کن خواهش میکنم چرا میخواهی برگردیم از من چه کاری ساخته از بینم؟ کمی صفت کن، گوزه هم را از کمر باز کنم و از آن کمی آب به تو بده هم. خدایم. خدا کودک چه چشمان سرخ و سوزنده ای داره. از چه نه نه نه به تو آب نمیدهم. هم از یاران همان دیب سرزمین تاریکی هستی من خوب بچه را بد نگاه کن ببین دی مارها تو را هم محاصره کردم دانت بر شما نباید فری به هر پای تو را میخوردم و برای کودکیت دل میسوزندم نت هست در انتظار تو هست. چه گفتی؟ برادرانم دنیان ها سالم و سلامت <متش> اما تو دیگر نمی توانی انها را ببینیم اینجا آخرین منزل باید ملک محمد من فقط می خواستم با این حرفها ها تو را آزار دهم حالا آماده من <تصفيق> <انا> نمی <نمیگوشم. تصفيق> این ما چرا هنوز زندند بیروده سی نکن قهرمان پوشالی <تصفيق> سر هر ماری را که قط کنی سر تازه به جایان می روید اول داره چه مخمسه ایست این موجودات خبیز و لندیت چه می یه دوستان من عصبانی هستی ملکی محمد دامانش باش <تصفيق> لعنتی <تصفيق> چشمم چشمم آن انگشتری را کنار بگیر لعنتی سنگ تبدیل شد خواهیت <تصفيق> زودتر دست بکار شم اما همه ای این موجودت من اون را به سنگ تبدیل کنم چیزی نمان بود که اینجا شکست بخورم خدایی شکرت <تصفيق> چه بود؟ خدایا کمک کنم چه باید کنم در این تاریک من, من فقط چهار گوی سوقنگ نورانی میبینم طوری که گویی در فضایی بی انتها حرکت میکنند گویی ها گاه پینهان میشوند و گاه دوباره مراقب باش ملک محمد پسرم مراقب باش کمایید کمکم کنید پدر خوشیار و قوی باش پسرم اکنون تو در آخرین مراحل پیروزی هستی قوی باش پدر آیا تو واقعا از پیروزی من شاد و خوشحال خواهی شد؟ آری پسرم هیچ پدری آرزویی جز این برای فرزندش ندارد. پس چرا منو برادرانم را از این سفر معن کردی؟ چون طاقت دیدن زجر و شکست تو سعید و مسعود را نداشتم امین آه. می این باید همان اجده های سرزمین تاریکی باشد داری پسرم، آه. مراقب او باش متاسفم که من اجازه ندارم، هیچ کمکی به تو بکنم من همه سختی ها را به جان خریدم پدر چه پیروز باشم و چه شکست بخورم ادامه میدهم. دهم چون است که خود انتخاب این انتخاب مرا هم سرف راز کردی پسرم من خود یک شکست خورده هستم و آمدم که تلاش تو را تماشا کنم مراقب باش پدر نمی نمیتواند به شبه من آسیبی برسان. آسود خیال باش پسرم پدر چه شده ملک محمد نکند که می ترسیم دیگر ترسی ندارم چه؟ از از برادرانم سعید و مسعود بگو، یکی از مردمان سرزمین زلبت خبری از آنم به من داد آیا آنها هنوز زنده بله آنها زنده پسرم اما اما چه اما... پدر؟ حقیقت را به من بگو اما سرنوشتی ناخوشایند یافتند آنها در اصارت و بردگی هستند باور نمیکنم این باور کردنی نیست پدر داری اما زندان و از اعمال گذشتهشان پشیمان آنها در عبرت بزرگی گرفتند خدا را ش ه هنوز جای امیدواری هست همیشه امید هست پسرم همیشه حال آنها با دلی امیدوار منتظر تو هستند تا بتوانند در کنار تو های نابخردانه خود را جبران کنند تو هم قول بده کمکشان کنی قول میدهم پدر قول میدهم اگر از این های سرزمین تاریکی به سلامت بیرون آمدم به دیدار آنها بروم و یار و یاورشان باشم پسرم این بهترین خبری بود که می از زبان تو بشنوم من دیگر باید بروم برو پدر روانت همیشه شاد باد مراقب باش اشتها به تو حمله برش آسوده برو من او را نابود بیکنم برو پدر نه میمانم تا فرجام خام را ببینم <تصفح> نمیخواهم با دیدن سرنوشت من آزور پدر تمن نمی کنم برو بگذار با خیالی آسوده با این حیولا در بیابدم باشم اد... اگر تو این گونه آسوده تری ببتدون دیگر تو ملك محمد یادت باشد که سر اجده ها را از تنش جدا نکن تنها هدفت باید کور کردن اجدها باشد فراموش نکن جوان مرد چشم اجده چشم آه... این اجده ها چهار چشم سرخ آتشین دارد شمکونه میتوانم هر چهار چشم او رو با هم نابیدن کنم در حالی که یک شمشیر بیشتر با خود ندارم یه بیهوده تلاش نکنم آنه او را انگشتری یا مانهای قبلی را سنگرد شاید اتبانه درای مدتی این اشده های چهار چشم را کور کنند باید ها چهار کنند بسیار خب یا جلو افریت یا زمان مرگ تو هم فرا رسیده خدا یا شکرت چشمان این حیول های از سب جا شد از خشم سر به دیوار میکوبد دیگر تکان نمیخورد چیزی نمانده بود که مرا زیر بدن خود به حلاکت برساند لعنتی حالا از تو جز آتش چیزی باقی نمیماند دیگر باید بردم باید خود را برای روی آروی بادی و سرزمین تاریکی آماده کنم آخرین و مهمترین مرحله کار من این است بتا مرباب چه کمکی از من ساخته است؟ از تو ممنونم کافور که مرا تنها نمیگذاری این وظیفه من است سربرم میدانم که این آخرین باری است که توانستم تو را احسار کنم به همین دلیل می خواهم به دو سوال من پاسخ دهی دپرسید ده سربرم من سراپا گوشم. اولی اینکه دیو به تاریکی کجاست و دوم اینکه رمز نابودی از چیست؟ متاسفم سربرم. من فقط میتوانم به یک سال شما پاسخ بگویم. آه. دست میگویی. فراموش کرده بودم. عربا بگویی که به کدام یک از دو سآل شما پاسخ بگویم. من خود میتوانم جای او را پیدا کنم. تو تنها رمز نابودیش را به من بگو. رمز نابودی این دیو بسیار ساده است برم. سرورم باید هنگامی که به سراغش می روید او خوابیده باشه بعد نکه شمشیر خورشید را به انگشتری که به شما داده بکشید و بعد؟ بعد وقتی شمشیر را از سر تا به انتها به انگشتری کشیدید اون را در قلب دیوه تاریکی نشانه بروید ادامه بده ادامه بده بابا قدرت شمشیر را تا انتها در قلب دیو فرو کنید یعنی با همین کار دیو سرزمین تاریکی نابود می شود؟ بعد چه؟ عجله نکنید در با بعد خودتان همه چیز رو خواهید فهمید فقط مواظب باشید کاری را که گفتم درست انجام بدهید اما اما من چگونه باید از نتیجه کارم مطمئن باشم <تصفيق> مطمئن باشی در باب که اگر کارها را درست انجام بدهید به آنچه که می خواهید, خواهید رسید. فقط فقط فقط چه چیز دیگری هم هست؟ به خاطر داشته باشید هر اتفاقی که افتاد تحت هیچ شرایطی دسته شمشیرتان را رها نکنید وگرنه همه زحماتی کتاب امروز کشیده اید به هدر می رود. دسته شمشیرم را به هیچ عنوان رها نکنم. بله اروا من باید بروم. بدرود. موفق باشید سرورم. بدرود. کافو. آخرین دهلیز باشد اینجا محل خواب و استراحت دیمه سرزمین تاریکی است هاری صدای خورناسش رو به خوبی میشه فرصتی بهترازی نمیشه همون بهتر که او خواب است اما اما نکند در این قصر موجود ترسناک دیگری نیز وجود داشته باشد باید من باشم کافور چه میگفت؟ اول از همه شمشیرتان را به لبه بگیر. خواستم. این کار رو به بعد از بدن به تاریکی حالا می‌رفم. آه. آه. آه. آه. آه. خدایا این قصر همه غرق نور شد باید مقاومت کنم و شمشیرم را حفظ کنم نباید از حرکات او بترسم او فقط جان می دهد. آه. آه. خواهی که سر تبدیل شد دیگر نه از دیو تاریکی خبری و نه از قصرش حال می توانم دو مرتبه روی نگین انگشتریم را لمس کنم و خود را نزد پادشاه بزرگ پریان عالم خورشید شاه ببینم. هاری. من شدم. ویروس شدم. ویروس شدم. <تصفيق> خوش آمدی ملک محمد منتظرت بودم من هم از دیدار دوباره شما خوشنودم، بزرگوار چه شده جوان تا را پریشان میبینم دوست من سرورم نگرانم از اینکه هنوز نمیدانم به راستی به سرزمین تاریکی رانا بود کردم یا نه قصر او خالی بود لحظه ای بعد از اینکه شمشیر خورد نه از او خبری بود نه از قصرش آره درست است این حربی اوست متأسفانه هیچ کس نمیتواند برای همیشه پادشاه سرزمین تاریکی را نابود کند پس سرنوشت او و نتیجه همه زحمت و مرارت های من چه می شود نگران نباش جوان مرد او دیگر هوس جنگ با ما را نمیکند سرزمین و سلطنتش را به مکانی بسیار دورتر از اینجا خواهد برد جایی که حتی یک نفر از ما را نیز نمی پس باید خوشحال باشم که زحماتم بی‌نتیجه نماند درست است تو کار بزرگی کردی تو همه ما را از شرانگی به بدخواه نجات دادی پس بعد از مدت ها اکنون می توانم سودگی را دریابم، درست است؟ <تصفيق> آره جوان درست است. من هم خبرهای خوشی برایت دارم سر و پا گوش هم سر برم اول از برادرانت برایت خبرها دارم که میدانم از شنیدنش خوشحال خواهی شد البته که خورسند بیشم بزرگوار حتی جان تازهی به من می <تصفيق> آنها شرابهای اماد و سفر را فاسد می کنند مشتریان آن تباخی و خانه شیطان از دست و اناحریس به تنگ می آیند و آن را در امارتشان به آتش می کشند و نابود می <تصفيق> بر سر برادران هم سعید و مسعود چه آمد نگران نباش آنها سلامتند و آزاد. <تصفيق> آره شکر. سر فرصت به دیداران ها خواهم شتاف و به خاطر توبهشان یاریشان خواهم کرد اینک اینک چه ملک محمد بگو میخواهم ساعتی به پاس این پیروزی ها در خلوت به درگاه خداوند یگانه جهان سجده شکر به آورم و عبادت کنم کار نیکویست جوان مرد پس من هم خاطر تو را آشفته نمیکنم تا به عبادت بپردازی. اما اما چه بزرگوار چه کنم بعد از گفتگو با جان آفرین. آماده باش تا تو را نزد دخترم شاهزاده خانم پریان ببرم او هم همچون تو در تمام مدت طول این سفر نگران و پریشان بوده میدانم و سپاس گزارم چنین میکنم بزرگوار و به دیدار ایشان خواهم آمد خوب است پس تو را تنها میگذارم من و دخترم ساعتی بعد در تالار مخصوص منتظر تو خاهی بود فراموش نکن جوانمرد فراموش نخواهم کرد سپاس ای بزرگوار Ha, ha, ha, ha, ha.